صفحه صد و هشت خانم هم با اینکه سن و سالش کمی از دکتر جوان بیشتر بود به دکتر نزحت به چشم یک بزرگ خانواده خود نگاه می کرد. و اگر احیانا مسئلهی بود به خصوص امسال که ملک آراب با سرعی خانم به گومگو داشت در وهله اول اسم امو دکتر به میان می آمد. و جاوید را دنبال او میفرستادند، نه دنبال ملک آرا یا آدم های ملک آرا یا حتی تاج ما خانم. ملک آرا از دکتر منوچهرخان خان خوشش نمیآمد و جاوید این طرز فکر را در رفتار و روحیات نوکرهای ملک آرا نیز منعکس میدید. جاوید خودش از دکتر منوچهر خان نزهد بدی ندیده بود و از او خوشش میآمد. جنبه های ویژه انسانی در دکتر جوان بود که او را از دنیای قلدر، پررنگوریا و بی احساس ملک آرا متمایز می کرد. دکتر منوچه خام بود که جاوید را به خواندن کتاب بیشتر تشویق می کرد. در حقیقت او بود که وقتی دید جاوید علاقه به خواندن دارد از کتابخانه دارالفنون و از شخصی خودش برای جاوید کتاب می آورد. و او بود که به جاوید یک جلد خودآموز فرهنگ مارگو فرانسه داد و جاوید را به خواندن فرانسه واداشت و راهش انداخت. البته انجه که جاوید آن تابستان از پروردگارش میخواست پیدا کردن خواهرش افسانه بود. او به دکتر جوان اعتماد کرده بود و مطلب خواهر گمشده خود را خصوصی با او در گذاشته بود. دکتر به او گفته بود نگران نباشد. به او وعده داده بود که سر فرصت یکی از آدمهای خود را به باغ ملک آرا درکن می و سراغ می‌گیرد. و جاوید در میان صبر و انتظارها و یعظهای این تابستان منتظر خبری از طرف دکتر جوان نیز بود که نمی آمد هر روز به خودش امید فردا را میداد: راهی بود، پیدا میشد. شد به خودش اجازه نمیداد. این امید و روشنی تیر شود باغ ملک آرا در کن هرچه بود یک جا بود و افسانه آنجا بود و جاوید سرانجام به کن می رفت. آنجا آن باغ را گیر می افسانه را پیدا می کرد. و آن تابستان نخستین تابستان گرم و دراز جاوید در تهران بود که این چنین به پایان می رسید، که او گوش به زنگ و منتظر خبر یا فرصتی برای یافتن افسانه بود. میگفتند ملک آرا کمردرد و پشت درد بدی دارد و بد اونقتر از همیشه شده است. ملک آرا از مالیات هایی که دولت و اداره مالیه تازه برای او وز و به او اختار کرده بودند ناراضی بود و فشار خونش بالا بود و فشار خودش هم برای خریدن خانه سرعی خانم بالاتر رفته بود. و حالا پس از فوت مادرش بیبی گوهر تاج خانم داده بود اتاقها و حتی زیرزمینهای های خانه خودش را که طرف دیوار حیات سریا خانم بود خالی کرده بودند. خانه را آماده بنایی کرده بودند. البته به این بهانه ظاهری که عمارت حیات پشت اعتبار ندارد و ممکن است هر آن فرو بیاید. در این حیات سریا خانم تحمل می کرد و در آن حیات بین تاج ما خانم و ملک آرا سر لیلای آتش به جان گرفته مدام دعوا بود. چون ملک آرا لیلا را تازگیها به باغ اوین برده بود. لیلا هووی تاج ما خانم شده بود و تاج ما خانم هم این بلا را از چشم سریا خانم می دید. مادر با دخترش قهر کرده بود، شب و روز نفرین می کرد و دنبال فرصت می گشت تا دماری از روزگار لیلای سوزمونی در بیاورد. کدورت و قهر و دعوا و نفرین بود که با ساعتهای زندگی و حتی با زبانهای روزه و نفس های همه اجین شده بود و ماه رمضان می گذشت و تابستان خوش روی دوتا باغ افت می کرد و مثل سرطان پیش می رفت. و گذر و زیر دفتر با تاقها و بازارچههایش توی حرم گرما و گرد و خاک آویزان بود، و صبح و ظهر و شب و وقت و بی وقت شهر تهران هنوز در خواب منگ قاجاری بود، تهران هنوز در خواب منگ قاجاری بود، و این تابستانی بود که به حادثه بد خانه سرعی خانم منجر شد و دردهای تازه و نوع دیگری برای جاوید به بارا ورد. بیست و صفحه صد ده نیمه شب با صدای جیغ زنها از خواب پرید. اولین چیزی که به چشمش خورد شعله‌های آتش بود که از پنجره ها و درهای اتاقهای سمت چپ خانه، سمت دیوار خانه ملک آرا زبانه می‌کشید. جاوید هنوز شبها توی باغ جلوه اتاقک می خوابید. از جا پرید و به سوی پله‌های ساختمان دوید به سوی پله‌های پشت بام چون می‌دانست ثریا خانم و هما هنوز روی پشت بام توی پشه بند می خوابیدند، و فاطمه بگم هم کنار آنها بیرون پشه بند می خوابید. اگرچه پشت بامی که آنها خوابیده بودند هنوز در آتش نبود اما راه پلکان همه پشت بام‌ها یکی بود و این قسمت هم اکنون غرق دود و حرم آتش بود زنها هر دو بیدار بودند و جیغ میزدند و شیون میکردند. جاوید وسط تاریکی و آتش و دود بالای پلکان تنگ و مارپیچی به سریایا خانم رسید که بچه به بغل وحشت زده مانده بود و گریه می کرد. او بچه را از سریایا خانم گرفت کوشش میکرد، چشمش به بدن نیمه برهنه سریایا خانم در پیراهن خواب نیفتد پایین آمد و آنها را به پایین آمدن تشویق کرد سعیه خانم تونتون به دنبال جاوید و بچهش آمد تا توی حیات کنار حوز رسید. جاوید اینجا بچه را به او داد. خودش دوباره دوید سراغ فاطمه بگم و او را نیز پایین آورد و به جای امن رساند و پوششی نیز برای آنها آورد. بعد آتش را نگاه کرد. نمیدانست چه کار کند؟ دوید سطل و آب پاش را آورد و در حالی که داد میزد و همسایه ها را صدا می کرد مشغول آب آوردن و ریختن آب به پنجره ها و درون اتاق ها شد. تمام اتاق ها انگار ناگهان با هم آتش گرفته بودند و خوشبختانه کسی در آنها نبود. به زودی چند تا از همسایه ها و اهل محل هم که بیدار شده بودند به کمک آمدند و در خاموش کردن آتش کمک کردند. مردم با جنجال و حیاهو و یا علی و یا ابوالفضل گویان با سطل و آفتابه و دیگ و قدح از حوض آب میکشیدند و به آتش میریختند. به فاصله چند دقیقه آب حوض بزرگ ته کشید و ملت به راهنمایی جاوید به طرف پاشیر آب یا آب جوی کوچه هجوم آوردند و کوشش برای فرونشاندن آتش و جلوگیری از سرایت آن به ساختمان روبه قبله سریا خانم ادامه یافت ملک آرا آن شب در تهران نبود از بعد از عید فتر که برای دو سه روز بود به باغ ییلاقی اوین رفته بود و هنوز باز نگشته بود امشب جدیت، سمیمیت و رهبری قاطع جاوید در میان مردمی که در بلبشو و آشفتگی در هم ریخته بودند، همه را به فرمان برداری از او وامی داشت. خودش همه جا بود، هر جور تلاش و فداکاری را می کرد و بیشک جانفشانی او بود که خانه را از ویرانی یکجا و کامل رهایی داد. او همچنین در این میان یکی از بچه های کوچکتر قلوملی را دنبال دکتر منوچه خان نصحت فرستاد که او را برای کمک به زنها خبر کنند. سوختگی جزئی و شک و ترس آنها را منقلب کرده بود. آن شب پیش از اینکه نوکرها و همسایه ها و اهل محله آتش را مهار و خاموش کنند تمام اتاقهای سمت راست خانه سرعی خانم با اساسیه و در و پنجره سوخت. و قسمتی از سقف هم فرو ریخت. سقف هشتیه بین این اتاقها و بنای روبه قبله من جمله پله های پشت بام نیز، فرو فروریخت، همه از هم می و هیچ کس آتش از کجا و چجوری شروع شده بود، در این خانه، در این شب آخر تابستان، هیچ جا آتشی، حتی منقل یا آتش سیگار و چپقی نبود، اما بنا ناگهان آتش گرفته بود و آتش تند و لو شده بود. هسته تا اتاق با هم سوخته بودند. انگار که اجنه از میان سیاهی شب خزیده بودند. روی هسته تا اتاق را نفت ریخته و کبریت زده بودند. اما جاوید به اجنه اعتقاد نداشت. در باغ نیز تمام شب بسته بود. فقط نکرهای ملک آرا می توانستند از راه زیرزمین های باغ اصلی به این حیات بیایند و آتش را برپا کنند. حتی چهارچوب های درها و پنجرهها سوخته بودند و تمام ساختمان مبدل به یک پارچه زغال شده بود. همانطور که ملک آرا یک روز پیش بینی کرده بود و سرعی خانم را ترشانده بود، امشب انهدام این قسمت از خانه سرعی خانم هولنات و کامل بود. اهل خانه در وحشت و ترس مرگ بودند حتی در آن خانه در خانه خود ملک آرا می گفتند تاجما خانم هم از خواب پریده و از دیدن های آتش هول کرده بود قلبش گرفته بود و قش کرده بود نزدیک سحر وقتی آتش بالاخره خاموش شد و نوکرها و همسایه ها و اهل کوچه که برای کمک آمده بودند رفتند و فقط یکی دوتا خودمانیها باقی ماندند و همه جا در تاریکی و در دود فرو رفته بود جاوید در حیات را بست. وسط حیات پای پله های اتاق تالار نشست تا اگر به وجود او نیازی شد آماده باشد. سرعی خانم و را به اتاق تالار برده بودند، چراغها را روشن کرده بودند، سماور هم آتش و چای درست شده بود. دکتر منوچه خان نزهت هنوز آنجا بود، فاطمه بگم و رقیه بگم نیز هنوز آنجا بودند. فاطمه بگم هم به مداوا نیاز داشت. جاوید شنید که دکتر به سرعی خانم و بچهش و به فاطمه بگم چای شیرین داد که در آن حب مرفین حل کرده بود، پس از چند دقیقه فاطمه بگم را که خواب بود بغل کرد و به یکی از اتاقهای عقبی رفت و با بچه خوابید. سرعی خانم میان به بگم و دکتر نشسته بود و هنوز انگار گریه میکرد. در اثر چای و مرفین دکتر نزهد مانند روحی که وسط بیهوشی و مالی خولیا باشد حرف می زد. چادر نماز رنگ و گلدارش عقب سرش رفته بود. موهای آشفتش یک گوشه پیشانی و روی شانه و سینه ریخته بود. پیراهن خواب سفید بدن چاق و سفیدش را تبلور می‌داد. امشب او به طور شگرف و خیال انگیزی زیبا بود و ترسیده و بیپناه به نظر می رسید. دکتر و رقیه بگم به او دلداری می دادند. جاوید آمد پای پله ها نشست. خودش خسته و کوفته بود. با دست و صورت دود زده و چند جا سوختگی خوابش می‌آمد. نفس راحتی کشید که این شب عجیب هرچه بود بدون مرگ و بلای تلختری برای این خانواده به پایان رسیده بود. در این حیرت و اندیشه های دور و دراز بود که آیا آتش عمدن به دست کسی روشن شده بود یا چطور؟ حالا از این به بعد در این خانه سوخته چطور می شود با این وضع حالا یا خانم همینجا با دلهره زندگی می کرد یا خانه را بالاخره به ملک آرام می فروخت و به خانه آنها یا به جای دیگری می رفت اما امشب یا در این سپید دم شوم او خیلی خسته و کوفته بود فکر کرد صبر می کند تا فردا ببیند وضع چه خواهد شد خابالود از دور شنید که در اتاق تالار دکتر نزهت به رقیه بگم گفت استکان دیگری چای گرم برای سرعی خانم بریزد و دوتا حب دیگر مرفین هم داد که در چای حل کند به او بدهد. اگر به او هم به جاوید هم حب مرفینی یا هر حب دیگری میدادند دادند بدش نمی آمد اما او تصمیم داشت امشب تا صبح به هوش و گوش بماند و آماده به خدمت بیدار باشد. شد آمد لب یکی از باقچه از آب توی یکی از آفتابه ها کندک آبی مانده بود، دست و صورت خودش را شست، و آمد جلوی اتاقک خودش، کنار تشک و لحاف خودش روی یک آرنج دراز کشید، به تالار و آدمهای تالار چشم دوخت، آسمان روشن و پرستاره بود، ماه نصفه می درخشید، نسیم خونکی از طرف های شمال می وزید، شاخه های درخت های باغ را می لرزند. در اتاق تالار جاوید حالا سریا خانم را نمیدید، انگار برای او جا انداخته بودند و او را همانجا خوابانده بودند. رقیه بگم، چراغ گرد سوز را پایین کشید و دنبال دکتر از اتاق بیرون آمد. آن دو نفر از میان سایه های تاریک حیات از پله ها پایین آمدند و در حالی که حرف می زدند به سوی در حیات رفتند. دم در دکتر رقیه به را به خانه فرستاد. کاری که جاوید مایل بود انجام نمیشد. شد. او دلش می خواست یکی از زنها امشب بالای سر سرعی خانم می نشست. اما دکتر به هر حال امشب خودش نرفت. برگشت و انگار که چیزی را فراموش کرده باشد یا از رفتن منصرف شده باشد، نگاهی به ساختمان نیمه تاریک سرعی خانم انداخت. بعد نگاهی به طرف اتاق که جاوید انداخت. جاوید را سر جای خودش دید، اما حرفی نزد. فکر کرد خواب است. جاوید همانطور نیمخیز منتظر شد. منتظر بود که دکتر او را صدا کند یا بیاید با او هم حرف بزند. یا دستوری بدهد، یا دست کم از او بخواهد در را ببندد، اما دکتر جوان هیچ کدام از این کارها را نکرد. در سکوت شب، خودش در حیات را پشت سر رقیه به بست. دوباره از توی تاریکی حیات از جلوی قسمت سوخته و سیاه رد شد و به سوی اتاق تالار برگشت. از پله ها بالا رفت، وارد اتاق بزرگ شد و در را بست. پنجره های باز را هم بست. بعد چراغ گرد سوز را پایین تر کشید. تالار در تاریکی فرو رفت و دکتر در اتاق باقی ماند. بیرون توی باغ سهد زره زره روی افق بالای ساختمان سوخته سرعی خانم رنگ می گرفت. شب پاورچین پاورچین میرفت. ستاره ها ناپدید می شدند و خروزهای نن احمد از حیات بیرونی ملک آرا قغولی قغول می کردند. جاوید خسته و نژند گوشه ی حیات که با بقایای ساختمان سوخته و پر از خاطروبه و زباله ابوس می‌نمود شب تیره را میدید که آهسته آهسته رنگ میباخت و محو می‌شد خودش نفهمید که چه وقت جورکش برد اما وقتی تکان خورد هوا روشن شده بود بعد پشت هیکل دکتر منوچه خان را دید که از در حیات بیرون رفت و در را پشت سرش بست جاوید فرصت نکرد بلند شود بیاید از دکتر احوال ثریا خانم را بپرسد چه برسد به پرسجو در مورد وعده ای که دکتر درباره باغ کن ملک آرا به او داده بود و خبر و نشانی از افسانه 27 صفحه 114 روز بعد از آتش سوزی خانه سریّا خانم در آشفتگی، غم، واخردگی و هرج و مرجی بود که میشد انتظارش را داشت. از صبح زود از همان ساعتی که دکتر منوچرخان نزحت از در بیرون رفت، جاوید پا شد و آهی کشید. دست به شد، پاشنه هاش را ور کشید و به تمیز کردن، جمع و جور کردن و جارو کردن حیات پرداخت. کار یک نفر دو نفر نبود. به هر ترتیب کار را آغاز کرد و پس از آنکه کم کم روز بالا آمد و نوکرهای ملک آرا و این و آن هم یکی یکی آمدند خاک و خاکروبه را جارو کردند بیرون ریختند و آتاسه سوخته و نیم سوخته را از اتاقها ها بیرون آوردند و همه چیز را به دستور میرزا اسقرخان که معلوم بود او هم از جاهای دیگر دستور دارد آوردند بیرون ریختند یا اگر هنوز ارزشی داشت، به خنزرپنزری های دورگرد که هیچی نشده توی کوچه جمع شده بودند، فروختند. دل دزدیها و کشرفتن های دیگری هم بود. سرعی خانم تا ظهر بیدار نشد یا بیرون نیامد، گرچه سایر اهالی دو خانه، البته روز ملک آرا و لیلا همه آمده بودند، به هم ریخته بودند و همه همه جا بودند. نزدیک زهر حتی خود تاج ما خانم که با دخترش قهر بود، با چادر و چاقچور، هن و هنزنان از در حیات آمد و به اتاق تالار به دیدن دخترش رفت. ظاهرا راهروی روی زیر های بین دوتا حیات حالا خراب بود یا گرفته بود یا ناامن محسوب میشد. کسان دیگری هم به دیدن سریا خانم آمدند، من جمله فروغ زمان و شوهرش هوشنگ خان. بعد از ظهر که سرعی خانم خودش با چادر و عینک از در تالار بیرون آمد و نگاهی به وضع حیات انداخت جاوید دید که رنگ چهره او مانند گچ سفید و دور چشمانش تا نصف درازای دماغ که از زیر چادر بیرون بود حلقه های سیاه داشت. صحنه نصف خانه نیم سوخته، حالا با سخفهای ریخته، جای درها و پنجره سیاه و خالی و دیوارهای سیاه و دود زده، منظرهای بود. اسر که همه توی ایوان نشسته بودند، انگار پیشنهادها و حرفها بر این بود که سرای خانم دو سه روزی پیش مادرش تاج ما خانم برود تا به این خانه وضع بهتری داده شود یا تکلیف آن روشن شود. تنگ غروب خبر آوردند که خود ملک آرا از باغ علاقی برگشته است. بعد از آنکه مطابق معمول که هر وقت ملک آرا میخواست بیاید اول نوکرها آمدند خبر دادند راه و جا باز کردند در را باز نگه داشتند ملک آرا میان سلام و تعظیم و تکریم دور و آمد. وقتی وسط حیات رسید ایستاد یک دستش را به کمرش گذاشت و نگاه کرد سرش را تکان داد. لباس آبی ملیل دوزی شده و شلوار و کفش خاکستری شیک و پیکی داشت با کلاه بلند فیروزه‌ای و پردار که امروز حالا به او حالتی دور از زمینه زندگی موجود میداد. بعد رفت بالای ایوان پیش دخترش و آنجا روی صندلی کنار او نشست همه جلوب های ملک آرا بلند شدند ملک آرا جواب سلام همه را بلند و بلند و, بلند و با لحن پرتم داد با بعضی ها احوال پرسی کرد، به همه تفقد کرد، بعد نشست و اجازه داد همه بنشینند و همه نشستند به جز تاج ما خانم که با قهر و اخم و تخم و صرف کنند راه افتاد پایین رفت خانه خودشان. معلوم بود قضیهی، لابد هنوز قضیه ی لیلا میان ملک آرا و تاج ما خانم را شکراب کرده بود و زن و شوهر چشم دیدن یکدیگر را نداشتند. ملک آرا مدتی بالای ایوان نشست، با سرای خانم گفته گو کرد. جاوید از گوشه حیات از آنجا که جلو اتاقکش نشسته بود، آنها را تماشا میکرد تمام سخنان آنها را نمی شنید، مگر بعضی از حرفها و صدای بلند ملک آرا را. لحن و حرفهای ملک آرا نقش پدر دلسوز و مد آبرودار شهر بود که به کمک و نجات دختر بیوش آمده بود. بعد، دکتر منوچه خان نزهت هم آمد، رفت پهلوی آدم های توی ایوان دست ملک آرا را بوسید، نشست، با سرعی خانم احوال پرسی کرد. سرعی خانم زیر چادر خونسرد و آرام بقم زده بود. زیاد حرف نمیزد، انگار او هم خسته و دل مرده و مغلوب موقعیت های زندگی خودش شده بود. و به زودی پیشنهادهای قبلی به نتیجه رسید و قرار شد سرای خانم دو سه روزی به خانه پدرش برود تا وزن درست شود و این مقوله ظاهراً به پایان رسید. ملک آرا پیش از آن که بلند شود یک نگاه دور و دراز و لابد خریداری به سر تا ته حیات انداخت. گرچه سرش را تکان تکان می داد و حسرت خسران و بیهودگی قضا بلا را می خورد اما یک جور حالت شیطانی در چشمان او بود که با حس ششم به جاوید می گفت که شازده قاجار خوش است. به خصوص شاید وقتی چشمهای ملک آرا در گوشه حیات خرابه به جاوید افتاد که از این به بعد لابد در این خاله خالی تنها زندانی میشد. دو سه ساعت از شب رفته بود که بعد از آنکه که رفتند، سرای خانم و بچه و کلفتش هم آمدند با جاوید خداحافظی کردند و خانه را به او سپردند و رفتند. جاوید خودش را در گوشه خانه تک و تنها یافت، فقط تاریکی و صدای سوسکا همدم او مانده بودند، نکرهای ملک آرا در این حیات را از بیرون قفل کردند. آن شب جاوید بعد از آنکه تنها ماند، مدتی اتاقک خودش را مرتب کرد و بعد بقیه دروپیکرهای خانه را هم بست. در تنهایی و عبوسی شب نمیدانست چه کار کند. گوشه باغ روی گلیم و لاحاف کهنش نشست. هنوز بوی دود و سوختگی از دیوارها و زمین باغ به مشامش می رسید که با بوی ویرانی و تنهایی خانه در هم بود. شب تیره حال خفا و سوت و کور شومی داشت نخستین فکری که به مغزش رسید این بود که شبانه از ایوان بیرون بپرد برود هر طور هست بگردد باغ کن ملک آرا را پیدا کند او از امشب آزاد بود به سرعی خانم هم قرض و دینی نداشت می توانست افسانه را پیدا کند و با مقدار پولی که داشت میشد شد به برگردند هنوز در این فکر و خیال بود که شنید یک نفر قفل در حیات را از بیرون باز کرد و آمد. میرزا از قرخان بود. ابو تراب کالسگچی کتوله هم با ریش و سیبیل فلفل نمکی و دماغ کوفتهایش دنبال میرزا از قرخان بود. میرزا از قرخان مدتی دوروبر حیات گشت. وضع آرام درهای بسته و همه چیز را بررسی کرد. مطمئن شد. بعد آمد روبروی جاوید ایستاد. وقتی حرف زد، آن لحنه ابلیسی همیشگی و سنبه پرزورش را داشت و همان حال موزیانه و آبزیرکاه همیشگی از سخنانش می بارید. به جاوید سپرد که اگر به جان خودش و جان خواهرش علاقمندی دارد، باید از چهار دیواری این خانه جم نخورد، تکان نخورد، موازه به این خانه باشد. گفت آقا از اینکه جاوید دیشب در نگهداری این خانه عرضه و تقلا به خرج داده بود خوشنود است و در آینده نزدیک شاید پسرک و خواهرش را ببخشد و به یز برگرداند اما اجالتا باید بمانند وای به حال او و خواهرش اگر سرپیچی بکنند و فضولی بکنند این ملک از این به بعد ملک آقا است و جاوید به دستور آقا مسئول نگهداری تک تک آجرهای خرابه است. سریا خانم هم همین را خواسته است. بنابراین بزمجه ی انجوچک مواظب باش. وای به حالت اگر دست از با خطا کنی. وای به حالت تو آبجید. درسته خان؟ تو هم که دستور حضرت اشرف را شنیدی. تو هم که می دونی. جزم های در تاریکی درخشید. سرش را تکان داد. آها آها در جرف های تنگ و سیاه او تیرگی و سنگدلی ای موج می‌زد که جاوید همیشه از آن می‌ترسید جاوید گفت چش من مواظبم میرزا اسقرخان گفت بهتر باشی ابو تراب گفت وای به حال جد و آبادت اگه که نباشی هستم وقتی آنها رفتند و در را از بیرون قفل کردند جاوید گریش گرفته بود گوشه ی لحاف نشست، زانوهایش را بقل گرفت، فکر کرد، افسانه، افسانه، افسانه، تقصیر من نیست، تقصیر تو هم نیست عزیزم، نه تقصیر تو نیست، سرنوشت ما اینجور است، همه ی زندگی من بسته به رهای توست، همه سرنوشت من بسته به توست که نمیدانم چه به روزت آوردند، اما پیدات میکنم، به سوگندی که به مادرم خوردم پیدات میکنم. به آسمان نگاه کرد که با ستاره ها و ماه درخشانی روشن بود. از آنهایی که در گوشه آسمان شاهد و نگه او بودند خواست به او کمک کنند. پدر و امویش نیز به آنها پیوسته بودند. مادرش هم به آنها پیوسته بود. آیا افسانه هم به آنها پیوسته بود یا هنوز زنده بود؟ باید او را پیدا می کرد و مطمئن میشد. امشب بیشتر از یک سال از روزی که به تهران آمده بود میگذشت. بدبختی ها و حکایت های این یک ساله را مرور کرد. اگر از همان روز اول که از یزد راه افتاده بود آنچه را که امروز از بدی های این دنیا و بهویش از این مردم میداند میدانست چه میکرد؟ چه خوب میشد اگر همه چیز را از روز نخست میدانست چرا باید بدی و دروغ در بین باشد؟ اگر پدر و مادر و خواهرش را پیدا می کرد و با هم به یزد برمیگشتند امروز زندگیش چگونه بود؟ به ستاره ها نگاه می کرد، سرش را تکان داد، نه، اینجوری فکر نکن پسر، از پیچ و تاب سرنوشت نه از پیچ و تاب به اگر و مگر فکر نکن، به اگر اینجور می شود یا آنجور می شد چه می شد فکر نکن، زندگی را اینجوری دست کسی نمی دهند. عقب و جلو نمی تشند. بچه نشو. درست و راست بیاندیش و مبارزه کن فقط به جلو فکر کن باز سست نشو تو یک بار از ورطه سقوط و از ترس و لرز و تردیدها گذشتی دیگر نترس یادت باشد، خام نشو سرش را باز به آسمان بلند کرد از اینکه ایمانش هنوز یک پارچه و برجا بود پروردگارش را سپاسگزاری کرد دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و با موجت گره کرده و با لب های بسته را سپاس گفت. پروردگار کیش پارسی با مهر و بانیکی و خرد بود و این را خود پیر بزرگ به او گفته بود. این را آن شب پیر جند پوش دشت خودش در خواب به او گفته بود. پاشد آمد گوشه باغ متروک و تنها توی منقل کوچک آتش درست کرد. گوشه منقل اندکی چای درست کرد نشست استکانی چای ریخت با نان خشک خورد و فکر کرد 28 صفحه 119 تنها گوشه حیات خرابه و نیم سوخته و قفل شده به صورت یک زندانی منتر زندگی کرد به هر حال هر بامداد در سپیده دم بیدار میشد، شستشو میکرد، می کرد، روبه طلوع آفتاب، نیایش می خاند. هنگام روز از کتاب هایی که داشت می خاند. یا خاطره ها و احساس های خودش را می نوشت. یا بلند میشد، شد ورزش می, برزش می کرد، یا کار میکرد تا سلامتی و پاکی جسم و روانش را نگه دارد. گهگاه یکی از نوکرهای ملک آرا می آمد، حیات را سرکشی می کرد. اندک چیز بخور جلو جاوید جوجو می و در دوباره بسته میشد. در عرض ماه اول سه بار خود سرایا خانم با کلفتش باطمه بگم آمد و آنها هر بار مقداری اساسه و بخش بندیل بردند. سرایا خانم بود که به وضع جاوید اندکی بهتر رسیدگی میکرد. هربار هر بار پولی و یا کتاب و روزنامه ای برای او می آورد یا او را میفرستاد از بازارچه و یا از سبز میدان برای خودش آزوقه و هرچه میخواست تهیه کند و به او امید میداد دختر ملک آرا خودش ظاهری نژند و بیمارگون داشت اما جاوید جرأت نمیکرد از او احوالپرسی کند. پاییز که فرارسید و نخستین بارانها آمد و گل و شل و لجن آزار دهنده ای توی حیات و محله برپا شد وضع جاوید تغییری نکرد، وضعه هیچکس تغییر نکرد جز آنطور که جاوید میشنید.